سلام دوستان من امیر یاری هستم و شما داریم به پادکست دیجی میج گوش میدین توی این پادکست من معمولاً در موضوعات مربوط به دنیای عکاسی دیجیتال صحبت میکنم کنم. وقات یک خبریه گاهی وقات بررسی یک وسیله جدید یا معرفی و نقد یک عکاس هستش یک عکاسی که تو اینستاگرام کاراش معروف شده یا اینکه گاهی وقات هم یک ماجرا جالب که توی دنیای عکاسی دیجیتال اتفاق افتاده رو درباره صحبت میکنم امروز میخوام درباره یک عکس سلفی صحبت بکنم شاید دیده باشین اکثر رو یک عکسی هستش که یک میمون با دوربین یک عکاس حرفه گرفته و این عکس توی دنیا عکاسی دیجیتال بسیار معروف شد و تقریبا تمام پیشفرص های قانون کپیرایت رو به هم زد و تبدیل به یکی از طولانی ترین دادگاه کپیرایت در جهان شد میخوام درباره یک میمون سلفی بگیر صحبت کنیم راستیتش اینه که قضیه از سال 2011 میلادی شروع شدش یک اکاس حرفیی به نام دیوید اسلیتر رفته بودش که یک سری عکس بگیره از یک منطقه خیلی تازه و بکر یک منطقه حفاظت شده توی جزیره سلاسی اندونزی وقتی که رفته بودش اونجا به طور اتفاقی یک عکسی گرفتش از یک میمون کوتاه کاکولار یک نوعی از میمون هستش 6 ساله به نام ناروتو البته اسمش ناروتو نبود بعدن روزنامه ها و مجلات این نام اسم رو گذاشته این ناروتو داشت با دوربین اسلیتر بازی میکردش که یه عکس سلفی گرفته از خودش. این عکس خیلی معروف شد. اگر که روی اینترنت این رو بزنین می ببینین البته من همراه با همین پادکست عکس این میمونارم گذاشتم اما به سرین که این عکس چجوری گرفته شده، یه کمی پیچیده شد. این عکاس اومد این عکس رو منتشرش کرد و شروع کرد از این عکس پولدارا بردن از اون طرف یک سری از ویب سایت ها هم این عکس رو منتشر کردن یعنی گرفتن از اسلیتر رو منتشرش کردن و هر کدوم یک روایت متفاوتی رو درباره ثبت این عکس گفتن مثلا ویب سایت های دیلی میل اومد صحبت کرد در تلگراف گاردین هر کدوم یک روایت متفاوتی درباره این عکس منتشر کردن که تنها موزه مشترک که توی ها بودش این بودش که خود میمون این عکس رو گرفته مثلا تیراژ نوشش که میمون دوربینر رو برمی داره میبر از خود شخص میگیره یا مثلا یکی از اون وبسایت ها گاردین میگه که میمونه میادش اونجا بازی میکنه توی دوربین نگاه میکنه اکثره میگیره اما خب خود اسلیتر همون روز وقتی که این اخبار منتشر شد توی مصاحبه با یک نشریه به نام آماتور فوتوگرافر توضیح دادش اینکه میمونه دوربین رو برداشته و برده و از خودش عکس گرفته یه جور بازرگانی رسانه‌ای بوده و واقعیت اینه که نه اصلا دوربین رو نبرده با خودش دوربین روی سپای بود میمون‌هامون دور و داشتن بازی میکردند که این عکس ها رو با یه دونه از این ریموت تریگرها گرفتن ریموت تریگر یک دستگاهیه که از راه دور میشه عکس گرفت البته خود اسپلایتر گفته که این دستگاه رو من آویزون کرده بودم کنار دوربین میمون آمده اون رو فشار دادن از خودشون عکس گرفتن البته سه سال بعد اسلیتر به مجله وایس گفتش که خودش هم متوجه شده که روزنما یکم موضوع رو جذابش کردن اما اون موقع فکرش هم نمی‌کرده که موضوع به اینجا بکشه و این داستان ها پیش بیاد و این اتفاقا بیفته و انقدر مسئله پیچیده بشه خود اسلیتر توی وبسایتش کنار این عکس توضیح داده که سه روز تقریبا طول کشیده تا اطمینان میمونا رو جلب بکنه و به اونه یاد بده که چطور به دوربین نزدیک بشن و این ها رو بگیرن چون که خب اون‌ها هی دوست داشتن که این دوربین رو بردارن برن حتی میگه که من اصلا خودم دنبال همچین عکسی بودم اما میمونا خیلی حساسن خیلی ترسوان و نمیشه یک همچین عکسی از هم نزدیک ازشون بگیری برای همینم هم میگه که من دوربین رو گذاشتم روی فوکوس خودکار که لنز خیلی واید بستم که همه کادر رو زیاد بگیره باز بگیره قابلیت عکاسی پی یا موتور درایو دوربین هم, هم فعال کردم تا اگر احیانا اومدم و دست دادم به این تیریگر پشت سرم عکس بگیره بعد برای این که مطمئن بشه که اون عکس میگیرن خب نمیتونه به میمونا که دکمه شاتر کدوم دکمه است و بیان این رو فشار بدین میاد چه کار میکنه؟ یه تیریگر وصل میکنه به دوربین و میره عقب باز از دور نگاه میکنه منتظر میشه که اونو بیان این تیریگر رو بزنن تیریگر یک دستگاه کوچیکه برای عکاسی از راه دوره که یک دکمه روش داره و مثلا دقیقاً برای همینجور جا استفاده میشه مثلا عکاس میبره دوربین رو میذاره نزدیک ساحل میاد عقب با این میسه این مرغای ماهیخوار که میان نزدیک میشن از راه دور اون دکمه رو فشار میده دوربین عکس میگیره این میادش این تیریگره رو میبند کنار دوربین یعنی آویزون میکنه همونجا که احیانا اگر این میمونا اومدن و با این بازی کردن خودشون اون رو فشار بدن و عکس بگیرن یه دکمه بزرگی داره و احتمالش هم خیلی زیاده که اون دکمه رو فشار بدن خودش میگه که میمون ها یه نیم ساعتون اون دوربر بازی میکردن این بالاخره میانن نزدیک با این دوربینه نگاه میکنن و بعد اون دکمه رو فشار میدن و کلی هم عکس میگیرن و این سلفی که داریم در اماده صحبت میکنیم یکی از بهترین عکس که این میمون ها تصمیر میمونه خیلی سریع توی رسانه های گروهی مثل تلویزیون و روزنامه و مجلات و صفحات اینترنت توی اینها منتشر شد و خیلی مردم رفتن نگاش کردن و با این حال کمتر کسی تصویر می که عکس سلفی ناروتو یا همون میمونه اینقدر به یک موضوع جنجالی توی مبحث حقوقی تبدیل بشه ماجره اینجوری شروع شدش که یک سایتی به نام ویکی مدیا، میادش و محتواهای های مجانی که قانون کوپیراید ندارن رو از روی سایت هایی که دامین عمومی دارن میگیره و من منتشر میکنه یعنی کارش اینه که میره نگاه میکنه ببینه که عکسایی که این مرانبر پخش شده روی سایت عمومی کدومش هستش که اینها قانون کپیراید ندارن میگیره میذاره روی سایت خودش مردم برن دانلودش بکنن همین سایت دیلی میل همونی که درمونه صحبت کردیم که مطلب رو منتشر کردش این عکس رو منتشر میکنه توی کپی رایت اکس می که مالک غیر انسان یا نان هیومن سایت ویکی میدی این عکس رو میبینه بعد میگه که خب این یک اکس عمومیه که مالک نداره عکس رو بر میداره و میذاره روی سایت رو منتشر میکنه و لینک دانلودم میده که مردم برن دانلودش بکنن تا اسلیتر یعنی همین عکاسه بخواد خبردار بشه که چی شده اینه یه چند روزی طول میکشه و توی همین چند روزم هم یه وبلاگی به نام تک درت هم میادش و این عکس از ویکی مدیا برمی و اونم منتشر میکنه و خلاصه خیلی این عکس پخش میشه اسلیتر تا که میفهمه چی شده یه ایمیلی میزنه به ویکی مدیا که این عکسو بردار. ویکی مدیا اول برمی اما چند روز بعد دوباره میذاره میگه بر اساس قوانین حق کوپیرایت به مالکیت فکری و معنوی یه اثاری برمی و هرچی هم حساب کردیم چون که اون میمونه این اکس گرفته و عکس هم روی یک دامین عمومی منتشر شده پس هرچی که هستش خلاصه مالک قانونی این شما نیستی عبرات اسلیتر بعدا تیک مصابه با بی بی سی میه که من نمیفهمم اینا چی میگن میمونه که عکس رو برای ویکیمیدیا نفرستادن که من رفتم اون جزیره. من تجهیزات حرف یککاسی عکاسی بردم اونجا اینا رو برپا کردم من چند روز سختی تحمل کردم وسایل من در معرض تهدید خراب شدن بودند من اونجا نورسنجی کردم فکوس تنظیم کردم اصلا عکس با دوربین من گرفته شده شماره سریال دوربین من روی اگزیفشه میمون اومده دکمه ریموت رو فشار داده و در اینا میگن که عکس مال من نیست معلومه که این وسط قانون یه اشکالی داره من که اشکالی نداشتم که بی بی سی بهش میگه که خب پس چرا توی یه مختلف گفتی که میمونه دوربین رو دزدیده اسلیتر میگه نه، من چند روز اونجا منتظر گرفتن عکسه بودم. یه بارم بله میمونه آمدن دوربینم رو دزدیدم بردم باش بازی کردم من دوربین رو گذاشتم که ترسشون بریزه. اما اون وقتی که عکسور گرفتن اصلا یه روز دیگه بوده و دوربین اصلا روی سپایی بوده توی عکس ها معلومه که دوربین رو سپایه بوده. همه چیز هم تنظیم بوده برای عکس برداری، یعنی دوربین روشن بوده، روی درایف بوده، فوکوس روی حالت خودکار بوده، لنز واید بستن که اصلا بیان عکس بگینن اینها حتی پارسال اسلیتر به مجله امریکن لایف هم گفتش که اون موقع که میمونه داشته این اکس رو دستش رو سپایه بوده و تو عکس ها معلومه اسلیتر میگه که قبل از این که ویدکی اون عکس رو منتشر کنه تقریبا نزدیک دو هزار پوند از فروش اون پول پ و اگر که این اکس رو اینا به رایگان منتشر نمی کردن احتمالا تا چند سال بعدش هم نزدیک 10000 پوند حدث می که می از این اکس در بیاره و این دقیقا حرفی ازش که وکیلاش هم می به حال آگوست سال 2014 یعنی تقریبا سه سال بعد بعد از کلی دعوا و رفته آمد و اون وکیلا با هم دیگه بحث بکن و برن و بیان اینها دادگاه بالاخره اومد و رعی رو اعلام کرد و گفتش که بر اساس قوانین رسمی ایالت متحده کپیرایت این اکس مربوط به سلیتر نیست و احتمالا مثلا همون میمونه مالک معنوی این اکسه به این علت که این قوانین دقیقاً اینطور میگه که یعنی قوانینی که مربوط به کوپیرایت هستش و این دادگاه بهش استناد کرد میگه که فقط آثاری که توسط یک انسان خلق میشن میتونن تحت قانون کپیرایت ایالت متحده قرار بگیرن این قانون شامل عکسا و آثار هنری ناشی از عملکرد حیوانات یا دستگاه هایی که بدون دخالت انسان اون اکسا و آثار هنری رو ایجاد کرده این قانون شامل اونا نمیشه بعد هم رأی میده که این اثر واقعا توسط اون خلق نشده توسط یک حیوان انجام شده الان مالکیت معنوی نداره داستان این کپیرهای تموم شد و خب اسلیتر نتونستش این رو ثابت بکنه و خودش میه که اون ده هزار دلاری که من میتونستم ده هزار پندی که میتونستم از این عکس بعدن در بیارم هم همش دود شد و رفت و نتونستش دیگه اون دادگاه رو برنده بشه رفتش هر هرکی رفتی سرال کار خودش سال بعد اسلیتر اومدش یعنی همون سال 2015 اومد با کمک یک ناشر به نام بلور بی که یک شرکت آمریکایی توی سانفرانسیسکو یک شرکت نش یک کتابی منتشر کرد به نام واید لایف پرسونالیتیز عکس این میمونه که این سلفی رو هم گرفتم توی اون کتاب منتشر کرد کتاب وایدلاف پرسنالیتیز که منتشر شد خب این اکسه هم توش بود پکسی که کپیرایتش مربوط به ایشون نبودش و گفتم که دادگاه رو هم باخت و نتونستش کپیرایت این رو بگیره کتاب که در اومدش یک سازمان خیلی معروف که توی زمینه حفظ حقوق جانوران کار میکنن به نام پتا که حالا تعریف اسمش میشه مردم مسئول در برابر رفتار اخلاقی با حیوانات. این سازمان اسمش پتاه و تو زمینه حفظ حقوق جانوران اینها فعالیت میکنه. این سازمان اومدش و از اسلیتر شکایت کرد و گفتش که حق و حقوق اون تصویر سلفی که میمون گرفته این مال خود میمون است و باید حق و حقوقش رو بهش بدین. استنادش چی بود؟ استناد سازمان پتام این بودش که اومدش اون کتابا رو آورد و گفتش که عکس این میمون مال این آقا نبوده، مال خود میمونه بوده، یعنی حق نشرش مال اون میمونه است بر اساس اون قانون و اون دادگاهی که تشکیل شده بود، مال خود میمون است. این آقا اومده این رو توی کتاب جدیدش منتشر کرده و داره ازش پول در میاره بنابراین باید حق و حقوق اون میمونه رو بده بهش. به این ترتیب جنجال عکس سلفی ناروتو یه همون میمونه رفت توی فاز جدید دیوید اسلیتر که پیشتر خودش مدعی بود و اومده بود گفته بودش که آقا اینا حق کپی رایت عکس من رو گرفتن حالا خودش رفته تو معرض اتهام از طرف دیگه بر اساس این شکایت حالا پای ناشر این کتاب یعنی همون انتشارات بلوربی هم اومده و باز شده به این دعوای حقوقی یعنی شرکتی که اصلاً تا اون موقع کپیرایت رو نقض نکرده اون هم به دلیل اینکه این, این شکایت اتفاق افتاده از این عکس حالا الان اومده یه پای دعوا شده توی اولین دادگاهی که برای تعیین تکلیف حق کپیرایت این عکس برگزار شد قاضی فدرال این دادگاه اومد گفتش که حیوانا نمیتونن مالک چیزی باشن بنابراین پرونده مختوم هست تموم میشه میره کنار همونجا رأی رو داد اما سازمان پتا وکیلای خیلی قدرتمندی گرفتش بعد به عنوان مدافع اصلی حق و حقوق ناروتو یا یعنی همون میمونه از ادعاش کوتا نیمد اومد گفتش که باید بره دادگاه تجریر نظر رفتش برای دادگاه تجریر نظر دادگاه تجریر نظر کی بود؟ سپتامبر 2017 یعنی آخری همین تابستون پارسال توی همین تابستون دادگاه خراب بودش که برگزار بشه توی همون روزا همه منتظر بودن که ببینن به کجا میرسه وکیلای پتا اومدن پیش اسلیتر و بهش گفتن که ببین بر اساس اون دادگاه قبلی که توش باختی قانون کپیرایت این مالتو نیستش و ما میتونیم حق کوپیرایت این ازت بگیریم و اگر که بگیریم انقدر میشه و رقمی رو که بهش میگن میگن خیلی رقم گرونی بوده انتشارات بلور بیام چون اونم یه طرف داستان بوده وکیلاش میگن, میگن که احتمال داره که پتا ببره این دادگاه رو میان و میشینن سازمان پتا، دیوید اسلیتر همون عکاسه و انتشارات بلور بیکین کتاب رو منتشر کرده، میان میشینن با هم دیگه صحبت میکنن، اینها توافق میکنن. میگن که سازمان پتا شرکتش رو پس بگیره، بعد از این طرف هم اسلیتر و همون شرکت ناشر از این به بعد موظف میشن که از حالا به بعد هر چقدر که این کتاب میفروشه، 25 درصد از درآمد اون رو ببرم به یک سازمان خیریه بدن همون سازمان ای که در جهت بهبود زندگی همین میمونا کار میکنه بدن به اون در واقع اون سازمان سازمانی هستش که به حیواناتی که در حال انقراز هستن در جهت جلوگیر از انقراز اونها کمک میکنه که این اتفاق نیفته براشون برحال سازمان پتا موفق شد از این پرونده 25 درصد. درامدش رو بگیره درآمد سلیتر رو البته خب اگر می بردش احتمالا صد درصد اون درآمد رو می گرفتش که خب خیلی درامد زیادی هستش ولی خب پرونده خیلی پیچیده بودش اینا رفتن با هم بیگه صلح کردن روی همون 25 درصد بسنده کردن البته بعدا گفته نشدش که انتشار بلوربی تو توی اینجا چقدر زرر کرده و آیا موظف هستش که اون هم چیزی بده یا این که بدون اینکه چیزی اضافه بکنه فقط با همین دراماتی که سلیتر قرار بده از این جنجال بیرون اومدن حالا اون صحبتش دیگه معلوم نشدش که به کجا رسیدش حالا اصلا دلیل این که این موضوع رو من انتخاب کردم اینه که چند روز پیش دادگاه اعلام کردید که آقا مسئله این عکس به دلیل اینکه اهمیت خیلی زیادی پیدا کرده نباید بیرون از دادگاه با صلح اینها تموم بشه و قرار شده که دادگاه دوباره جریانه پیدا بکنه البته خب واقعا نمیدونم قراره چه بکنن مثلا احتمالاً مهمونه قرار بیار شوادت بده یا مثلاً اسلیتر باید بره دوتا شاهد آقل و بالغ بیاره بگه یا چیستم معلوم نیست حالا خیلی معلوم نیستش که قرار چه اتفاقی بیفته. موضوع مهم اینه که دادگاه همچنان ادامه پیدا کرده حالا اسلیتر میگه که توی این چند سال درگیری توی دادگاه و خرجایی که برای وکیلا کرده بود این اتفاقایی که پیش اومده و این 7 سالی که درگیر این پرونده بوده اونقدر روی زندگیش تاثیر گذاشته که دی. اصلاً دیگه که اش به این نوع عکاسی رو دست داده. و وقتی که می‌خواد یک عکس بگیره اصلا مطمئن نیستش که این عکس ارزشش رو داره. بخواد بره سفر عکاسی بکنه اینها و خودش میگه که اصلا این موضوع دادگاه های این چند سال باعث شده که خلاقیت من از بین بره. الان حالا خیلی کاری نداریم که این دادگاه نهایتاً به کجا میرسه و چه شکلی تموم میشه. در مورد این پرونده صحبت کردم که بگم این کپی رو که ما اصلاً عین خیالمون نیست و تو ایران مثل آب خوردن ازش رد میشیم تو خیلی از کشورها میتونه مسئله خیلی خیلی حادی بشه و ممکنه که نقض کپی یک عکس اون شخص خاطیر رو تا پای زندان هم ببره چیزی که تو ایران ما هنوز بهش نرسیدیم که آقا مالکیت معنوی قابل احترامه و ما باید حق مالکیت معنوی رو به رسمیت بشناسیم من امیر یاری هستم و امیدوارم که این پادکست برای شما مفید بوده باشه. از اینکه این پادکست رو با دوستانتون با کسانی که به عکاسی علاقه مندن به موضوعات مربوط به دنیا عکاسی علاقه مندن و دوستان که موضوعات دنبال بکنن شیر میکنیم و به اونها معرفی میکنیم پادکست رو ازتون خیلی خیلی ممنونم. امیدوارم که توی پادک بعدی هم همراه من باشین. عکس بخیر.